اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الحادين المهديين السلام على جميع انبياء الله ورسوله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديغة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل أجمعين اجمعين السلام علیه ابن علي الهوسای زین العابدین، السلام علیه محمد ابن علي باقر علم النبي، السلام علیه جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیه موسى ابن جعفر النكازم، السلام علیه علي ابن موسى رضا، السلام علیه محمد ابن علي ینر السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الهجة بن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنحار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 و البدعت قد احید فا تسمعوا قولي او قولی و تتیع او امری الى سبیل رشاد بحث در این بود که واقعه کربلا حرکت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و آشورای حسینی چه تبیینی در دفع موانع تحقق هدف انبیا دارد خب طبیعتا ابتدا باید موانع تحقق هدف انبیا شناخته شود البته بعد از اون که هدف انبیا شناخته شد چه موانعی سر راه هدف انبیا قرار میگیرد و نمیگذارد هدف انبیا تحقق بیابد و ما به عنوان پیروان ابی عبدالله علیه السلام با توجه به حرکت اون حضرت در واقعه کربلا و فرمایشاتی که داشتن آیا برای امروزمون در این رابطه چه درسهایی را میتوانیم فرا بگیریم خب در نخستین گام سخن از هدف انبیا که به میان آمد معرفت انسان ها در رابطه با هدف انبیا چند دسته شد اونهایی که انبیا را قبول کردند نبوت را پذیرفتند و معتقد شدند برای سعادت ما انسان ها و کمال و تعالی بشر خدا انبیا را فرستاده وحی نازل کرده کتاب فرو فرستاده تا بشر به کمک عقل خود از مکتب وحی درس بگیرد و راه تعالی را بشناسد و عملی کند نخستین مانع برای تحقق هدف انبیا شکل غلط معرفت نسبت به هدف انبیاست ما وقتی می در طول تاریخ معرفت انسان ها نسبت به هدف انبیا یا کارائی وحی در رابطه با هدف انبیا این دو دسته افراتی و تفریتی و یک دسته اعتدالی که مطرح شدند، اگر واقعا روشن نشود که آیا آنانی که گفتن وحی نمی تواند ما انسان ها را از نظر اجتماعی و نظام جمعی به کمال برساند یعنی در واقع انبیا مدعی نبوده ان و هدف انبیا تحقق نظام جالب و جامع و عادل اجتماعی نبوده است آیا این حرف درست است؟ اگر درسته پس نوبت به این که چرا یک نظام اجتماعی عادله بر مبنای وحی تحقق نیافت نوبت به این حرف نمی رسه اما اگر چه با توجه به درون دروندینی و چه برون بروندینی ثابت شد که لازمه وحی این است لازمه کمال یک دین این است که در همه شعون کمالی انسان وارد شده باشد و طرح بدهد اونگاه ببینیم موانع بعد از این طرح کلی چگونه است ما وقتی به دلائل دروندینی یک قرآن کریم دو روایات معصومین علیهم السلام مینگریم. نگریم حالا بحث بروندینی عقل استدلال عقلی مباحث حکمی مباحث عرفانی اینا رو الله بهش خواهیم پرداخت ولی وقتی ما به منبع درون دینی اصلش قرآن کریم مراجعه میکنیم یک قرآن میفرماید من رستگاری شما رو تأمین میکنم من قول میدم شما رستگار بشید به فلاح برسید فائز بشید ولی به شرطی که مؤمن شوید یعنی چی؟ یعنی از نظر قرآن کریم چه فرد مؤمن نباشد چه یک جمع کوچک که خانواده خانواده مؤمنی نباشد چه یک جمع بزرگ اجتماعی مؤمن نباشد اون رستگاری که قرار قرآن ایجاد کنه ایجاد نخواهد شد خب مؤمن کیست؟ دیدیم که آیات قرآن کریم تاکید می کرد کسی مؤمن است که مطیع خدا و رسول خدا باشد مطیع خدا به ذات به جهت این که اون مبدع و منشأ اصلی که جامع جمیع صفات کمالیه باشد نقص در او راه ندارد کمبودی ندارد و هیچ عاملی در این عالم با او قابل مقایسه نیست، او ذات اقدس الهی است و لذا به ذات مطاع مطلق فقط خداست، به ذات حاکم مطلق به ذات فقط خداست، عامل مطلق به ذات فقط خداست. اما از آنجایی که ما خدا را مطاع مطلق حاکم مطلق آمر مطلق میدونیم برای شناخت امر خدا نحی خدا دستور های خدا نظامی که این خدا برای زندگی ما برای ما در نظر دارد آشنا شویم و اطاعت کنیم خدا مطاع است خب باید امر و نحیش را بشناسیم تا اطاعت کنیم برای شناخت امر و نحی الهی و آنچه که خدا برای کمال ما لازم میداند نیازمند به واسطه بین خدا و خلق خدا هستیم همونطوری که خدا به عنوان مطاع مطلق اگر جامع جمیع صفات کمالیه نبود مطاع مطلق نمیشد. چرا خدا به ذات متاه مطلق است؟ و چرا به ذات بناست؟ هرچی خدا بگه اگر بناس ما مؤمن باشیم باید بگیم سمعا و طاعه آیات رو با هم بس کردیم چون مطلق کمال است پس اون واسطه ای که از طرف خدا قرار امر خدا را به ما معرفی کند نحی خدا را به ما معرفی کند نظام الهی را به ما بشناساند او واسطه بین خدا و خلق قطعاً باید انسان باشد اگر ملک باشد رابطه بین ما انسان ها و ملک برای شکل پذیری پایه اقلی منطقی ندارد به این جهت ملکی از ملائک الهی در این عالم مأمور ابلاغ امر و نحی الهی شود و به ما بگوید خدای عالم میخواهد شما اینگونه عمل کنید و ما بگوییم چون تو خود انسان نیستی شهوت انسانی نداری از غرایز انسانی برخوردار نیستی ابتلاعاتی که برای ما انسنها مطرحه توی ملک مبتلا نمیشی نفست از جای گرم در میاد و لذا توقع داری ما مطیع پروردگار شویم اگه تو بشر بودی خودت میتونستی اطاعت کنی اونگاه میتونستی به ما بگی بر این مبنا باید واسطه وحی الهی بشر باشد ولی بشری که شراعت دریافت وحی و ابلاغ وحی را داشته باشد که این در اصطلاح قرآن کریم چگونه بیان شده یک انما انا بشر مثلکم من بشرم من پیامبر انسانم ولی انسانی که یوها الیه همان که اگر شما یک استاد قوی مثلا رشته حقایق معنوی عرفانیه اسرار مگوی عالم را بدانید باشید پنجات شاگرد سر کلاس شما باشند شما اون اسرار مگو را اون قدرت های قضایی عالم ملکوتی را در اختیار همه این افراد قرار میدهید قطعا خیر به جهت اینکه این امر این قطعی و روشن است چو دزری با چراغ آید گذیده تر برد کالا اگر این فرد ظرفیت این اسرار مگو ندارد و این قدرت سیطره ملکوت بر ملک که یک قدرت عظیم معنوی است در اختیار انسانی بگذارم که زمینه سو استفاده از او دارد و به وسیله این قدرت دیگران را استثمار میکند می میکند می یا دیگران را به انحراف و زلالت میکشاند عقل و منطق و انصاف و عدل حکم میکند که من در اختیار آنها نگذارم مگر در میان این شاگردان اون فردی را که احساس می شود لیاقت دریافت این قدرت را دارد این قدرت را به او بدیم اگر برخی از شاعران حکیم نالیده ان بدگوهر را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راهزن، تیغ دادن در کف زنگی یم است به که آید علم ناکس را به دست بد گهر را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راهزن راهزنی که تیغ ندارد بهتر راهزنی میکند، یا راهزنی که تیغ در کف دارد و سلاح لازم راهزنی رو هم روز بروز پیشرفته تر پیدا میکند. پس ذات اقدس الهی به عنوان ذات کامل مطلق کمال آن چرا که به عنوان امر الهی حکم الهی غذای الهی نظام الهی برای من و شمای بشر لازم می داند، به وسیله این به ما میرساند که ظرفیت دریافت وحی دارند و ظرفیت قدرت معجزه پیدا کردن رو دارن آقا شما در نظامهای عادی بشری برخی از این انسانهایی که تو علوم غریبه کار میکنند کنن می اگر بخوان شعای از این علوم غریبه رو به انسانهایی که ظرفیت ندارن بدن اینا ممکنه چه فسادهایی برپا کنن حتی اگر اونا از کانال دیگر بخوان قدرت پیدا کنن سد میشند. نظام دقیق این علم و این رشته ایجاد میکنه لذا بعضی وقتا دیده شده کسانی که تو علوم غریبه کار میکنن میگن یه مراحلی رو استاد راهنما به من گفت تمام مراحل رو تی کردم به یه جای حساسی رسید قطع شد به نتیجه نتونستم برسم نمیدونه یه دستایی دیگه هم دخالت میکنه قدرت های دیگه هم بناس در اینجا اینا بر مبنای همون نظام الهی است یکی از تو پرانتز میگم توجه داشته باشید البته بحثش اینجا نبود اما چون به اینجا کشیده شد مجبورم اینو بگم یکی از فوائد امام قائب که بناس زنده باشد امامت و ولایت الهی را داشته باشد و نفعش به مثل آفتاب پس عبر شامل گردد و هدایت باطنی معمولیتش یکیش اینجاست یعنی اگر قرار برخی در گوشه و کنار عالم با یه قدرت های مافوق مادی و یه توانمندی های خاصی باعثه انحراف فکری و اندیشهای مردم بشد اونجا اعمال قدرت الهی از کانال ولی الله سلب قدرت کند و میکند اما ممکنه کسی اشکال کنه خب تو مسائل شبهات همینایی که داریم با هم بحث میکنیم و این همه ایراد و اشکالات میگه این در حد توان خودتونه اینا رو برید دنبالش بحث ما فوق قدرت ظاهریه داریم بحث میکنیم خب حالا اگر قرار خداوند حکم کند کیا حکم خدا را برای من بیان کنند این ارزش را هیچ مکتبی در دنیا غیر از شیعه ندارد شیعه میگه سه قداست سر قداست باید با همدیگه جمع بشه تا آمر مطلق من الله شناخته شود این ستا خصیصه چیه؟ یک اسمت دو علم لدونی سه نصف از طرف پروردگار یعنی اگر پیغمبر از طرف خدا قرار گرفته خدا پیانبر را به عنوان معصوم به من و شما معرفی کرده علمشم لدنی از کانال وحی براش داده و اگر بعد از پیغمبر این علی ابن ابی طالب علیه السلام است که فریاد میزند سلونی سلونی قبل انتفقدونی انا به طرق سما اعرف من طرق لعرز یعنی پشتم جرمه من به جای دیگه وابستم به این جهته که میگیم علی مع الحق والحق و الحق مع علی چرا علی حق است معیت با حق دارد چون الله اعلم حیث یجعل رسالته خدا بهتر میدونه رسالتشو قرار کجا قرار بده و کیا میتونن بیان لذا بعد از پیام خدا اونا که میشن پیامبران و اولیای به حق انبیا اینا میشن مطاع مطلق اینا میشن آمر باید حکم حکم اونها باشد بشر مؤمن تابه اونها باشه. خب درون دین اینها رو چگونه گفت مواردی رو تا دیشب عرض کردم اجازه بدید دعایی که دیشب آخر بحث بود وقت اجازه نداد سریرت شدم اما یک اشاره ای دارد این دعایی به بحث امیق فلسفی و کلامی بروندینی که بعد میخواییم بهش بپردازیم که حتی سوژهشو ما از همین دوتا آیه میتونیم بگیریم انایت بکنید سوره مبارکه انعام آیه شماره 57 رو که دیشب اشاره کردم قل انی علا من ربی پیغمبر بیناب بگو من از طرف رب آمدم خدای من پروردگار من که میگم منم که قرار حرفمو گوش کنید منم که قرار مطیع من بشید منم که قرار نظام الهیتون رو از من فرا بگیرید تا بتونید به اون کمالات برسید الان بینتن من دلیل دارم استدلال میکنم معجزه دارم براتون نشانه صحت ادعا دارم همینجوری که عرف نمیزنم و کذبتم بهی اما شما تکذیب میکنید شما نمیپذیرید شما قبول نمیکنید. ما اندی ما تستعجلون بهی اونی که شما میخواید عجله دارید شتاب میکنید به تعبیر خودمونی تر بگم اونی که من میگم از طرف خدا شما نمیخواید بپذیرید میخواید من تابع سلیقه شما بشم ما اندی نه این پیش من نیست این الحكم الا لله حکم نیست مگر از طرف خدا که این سیاق بیان به صورت مطلقه نیست حکم مگر از طرف خدا یعنی بدون قید یعنی مطلق اونایی که با زبان عربی آشنان این نحوه بیان رو که بیان اطلاقی است توجه دارن این الحکم الا لله یغسل الحق و هوه خیر الفاصلین خب اینی که اونا میخواستن عجله میکردن چی بود؟ که پیغمبر میگه این پیش من نیست حکمش با خداست. خدا هم اینو مثلا الان صلاح ندونسته. این چیه؟ اینجا میگن این حکم حکم نیست. چرا؟ حرف درسته. اونایی هم که گفتن درست گفتن. منطقه اونا میخوان بگن در حکم تکوینی حکم خدا مطلقه. در حکم تشریعی دیگه مطلق نیست. ما باید خودمون هم قاطی بشیم کم و زیادش بکنیم. که حالا ما اینجا میگیم درست این حکم حکم تکوینیه گرچه حکم تشقیهی هم از توش در میاد اما حالا ارتباطشو با آیه دیگه ارز میکنم اینجا قرینهی ای که حکم حکم تکوینیه میگیم درسته چیه پیغمبر وقتی میگه من بیانه آوردم مثلا معجزه من حالا برای افرادی که قراره چشمشون رو پر کنه فعلا ببینن درخت بیا درخ آمد یا مثلا شغل غمر کنه یا سنگریزه تو کف دستش حرف بزنه میگه خواه اینا بیانه است دیگه برای اونایی که در طول تاریخ و قرار معجزه معجزه عقل پرکن باشه قرآن قرار میده و این کنتم فیرهی بن من ما نزلنا علی عبد نافتو به صورت من مثله شک دارید مثلش بیارید و لم تفعلو ولن تفعلو هم نمیتونید چه کاری بکنید خب این بیانه است میگفتند؟ اونا میگفتن اگه راست میگی اینی که ما میگیم انجام بده مثلا فرض کنید الان اراده کن اینجا زیر رو بشه پیغمبر فرمود حکم با خداست قرار او صلاح بده. من سر خود که کاری نمیکنم. ان این الحکم کسانی که وحی را در حد اقلی گرفتن میگن این حکم اگر مطلقه مطلق تکوینیه ما صحبت تشریه رو داریم در قوانین تشریهی داریم یعرف می میزنیم. میگیم خوب اینو داشته باشید اتفاقا قرآن کریم میپرماید کسی حق دارد حاکم تشریعی باشد که بر تکین تسلط داشته باشد رابطه تشریعی را با تکوین هماهنگ کند خیلی بحث ذریفه. حالا دقت کنید یعنی چی من آیه شو بخونم بعد بحث حکمی و فلسفی شو که حکما امثال ملا صدرا تو اینجا مانورها دادن حرف ها زدن که به خدا قسم حیف مسلمان باشیم بمیریم این حرف را نفهمیم که اگر مؤمنیم با فهم این حرفها ایمان امیغ اندیشمندانه ای پیدا کنیم که به خود ببالیم الحمدلله که این حقائق را فهمیده ایم و اگر هم مؤمن نبوده ایم بفهمیم اونایی که یک عمر فکر کردن، اندیشمند بودن، مکاتب و زیر و روح کردن بر چه فایه این گونه مؤمن شدن و تسلیم گشتند که برای ما هم جا بیفته مطلب سوره مبارکه یوسف آیه شماره چهل ما تعبدون من دونهی الا اسماء اون سمیت و موها انتون و این که شما دارید می پرستید عبودیت می کنید، بندگی می کنید اونا رو قبول کردید تابه اونها شدید و با زبان قرآن آشنا بشیم دارم عرض می کنم یه پرستی بطپرستی اصر جاهلیت یه سنگ بذارن در مقابلش تسلیم باشن آقا اگر بنده یک باطلی را معبود قرار دادم بطپرست هستم یا نه؟ اونی که نمیتونه معبود باشه من او رو معبود قبول کردم پس من میشم عابد او میشه معبود رابطه من با او میشه رابطه عبودیت و چون معبود واقعی نیست پس میشه چی؟ پس میشه بطپرستی لذا این آیه داری چی و میگه؟ بطپرستی تشریعی مطیع کی شدی؟ فرمان کی آوردی؟ اینایی که شما دارید به عنوان فرمونده، صاحب مکتب، صاحب نظر، صاحب ایدئولوژی، راه، طرح نظام چنین و چنان اینا همش اسم قلمبه سلمبه است و شماها خودتون این اسما رو روشون گذاشتید ما انزل الله بها من سلطانن از طرف خدا در مورد اینکه اینا حق دارن مطاع شما باشند برای شما القاء نظر کنن شما تابع اونها باشید هیچ برهانی نیامده چه دلیلی دارید چه برهانی دارید سلطان اینجا به معنی چه برهانی اینجا دارید؟ که اینا حق دارن به ما دستور بدن ما مطیعشون بشیم بگیم طبق دستور شما این طرح نه این طرح حالا کجا؟ طرح خدا نه ترح شما طرح قرآن نه ترح شما طرح امام صادق نه ترح شما چون این مطالب گفته شده حالا عرض میکنم و اگر انشالله فرصت بشه امشب یه فرازی از درد دل امیرالمؤمنین علیه السلام را در نهج البلاغه در این رابطه براتون بخونم این الحكم الا لله امر الله تعبدوا القیم یعنی چی میگه کسی حق نداره به شما امر و نهی تشریعی بکنه این که تشریعیه اینجا که دیگه تکوین نیست پس این انل حکم و الله این انل حکم نیست مگر برای خدا اینجا راجبه چیه؟ چجوری قرار عبودیت بکنید؟ یعنی مربوط به فعل ما وقتی نحوه فعل من مطرح میشه این که تکوین نیست این که تشریه. اما حالا ارتباط انل حکم الله در تکوین و ارتباط حکم ال حکم با تشریه چیه؟ یه مقدمه ای لازم داره با یه سلوات ببینم چقدر آماده هستید. خوب دقت بفرمایید. یه بحثی رو حکما در فلسفه مطرح کردن. میگن واقعیات، اعتباریات، وحمیات. این مقدمه بحث بروندینیه که از آیه در میاد. که انشاءالله تو بحث بروندینی براتون ارزم کنم. ولی این مقدمشه. واقعیات، اعتباریات، وحمیات، واقعیات چیه؟ اونی که در عالم وجود، حالا ماده است، ماده، مافوق ماده است، مافوق ماده،, است. مافوق ماده. واقعیت دارد پس جزء کائنات تکوین عالمه مثلا الان بنده بگم زمین یه واقعیت آسمان یه واقعیت سنگ و چوب یه واقعیت من و شما یه انسان یه واقعیتیم برم تو عالم ماوراء ماده، روح یک واقعیت فرشتگان یه واقعیتن، حقائق عالم ملکوت یه واقعیت البته اونایی که ماтериаلیستان واقعیت رو در حد فقط متر و ماده میدونن بقیه رو واقعیت نمیدونن حالا ما با این فرضی که قبول داریم عرض میکنم پس واقعیات اونایی که تحقق خارجی داره واقعیت داره الان منده چشممو ببندم میگم زمین فوری تو ذهن شما میاد واقعیتی به نام این کره که ما میشناسیم بنده الان چشممو ببندم بگم درخت آسمان ستاره انسان هوا شجر بقر اینا واقعیت داره اعتباریات چیه واقعیت خارجی ندارد به عنوان یک موجود مستقل در دنیای خارج از ذهن من تحقق ندارد ولی در اینجا مهمه در ارتباط با واقعیت هست به این جهت بهش میگیم اعتباریات یعنی اعتبار داره معتبر موهومات نیستن برای اینکه معلوم بشه بذارید وحمیات هم بگم سومیشو بد برگردم سومی چیه وحمیات وهمیات چیه نه واقعیت خارجی داره نه اعتبار عقل است در رابطه با واقعیات یه چیزای ساختگی قلطیش که بعضیا ها میتونن تو ذهن خودشون برای خودشون ببافن بافتنی یا قلطی تو دنیای از آن مثلا بنده میگم این ساعت این میشه واقعیت تا یه شیع وجودیه واقعیتی داره میگم ساعت همه تو میگین خب قبوله هیچی منو رد نمیکنید. دوم میگم این ساعت مال من نیست این ساعت مال شماست مالکیت یعنی اگر مالیت و مالکیت را به شکل درست ما ترسیم کنیم فرض کنید ساعت مال بنده است؟ میگم مال من است اینجا یه اعتبار درست میشه اعتبار چیه؟ پس شما بدون اجازه من حق ندارید به این دست بزنید چرا؟ چون مال منه پس من باید اجازه بدم این که من بگم من راضی نیستم شما به این دست بزنید این از نظر عقل پذیرفته از شرعم پذیرفته چرا؟ میگه اعتباریست نسبت به یک امر واقعی ساعت وجود خارجی غیر از ذهن من داره مالکیت غیر از ذهن من وجود خارجی نداره رابطه بین من و اینه این میشه تکوین اعتبار میشه چی؟ تشریع این حالا وهمیات چیه؟ بنده تو ذهنم همینجوری فرض کنم الان روی این میز یک سماوار داره گلگل میکنه یه گوری چای روشه ده تا استکان جلوشه این بغلم نسکافه و قهوه و فلان گذاشتن آقایون تشبیه یارید میل کنید شما میگی دیوونه شده کو؟ کجا یا تخییل این همجود تو میشه وحمیات ما وحمیات رو میذاریم کنار اعتباریات تمام قوانین عالم میشه اعتباریات تمام دستور های اخلاقی میشه اعتباریات تمام اون که ما در دین به عنوان فقه بانون شرعی مطرح میکنیم میشه اعتباریات خب اعتباریات به وسیله درکننده واقعیات و در ارتباط با اون واقعیات باید وضع شود چه کسی بر کل تکوین عالم احاطه دارد و هوای نفس مانع نمی شود دقیق بر اساس اون تکوین تشریر مطرح ره کند غیر از خدا و اونایی که از طرف خدان اینو میخوام بخوبند خب دست کی بیفته؟ دست من. من احاطه بر کل کائنات دارم. کدوم فیلسوف در این عالم پیدا شده بگه همه چیزو میفهمم؟ هیچ اشکالی ندارم. کدوم دانشمند در این کره زمین پیدا شده بگه همه ی حقائق رو فهمیدم؟ امروز یه چیزی میگن، فردا عوض میکنن. پس فردا یه چیزی میگن، چهار روز دیگه عوض میکنن. آقا ژان رسو یک کتاب معروفی داره به نام قراردادهای اجتماعی و اینکه در دانشکده حقوق سوربون فرانسه مبنای حقوق خیلی مطرحه و فارغ و تحصیلان اون دانشکده، در هر جای دنیا سر کلاس برن، اینا رو تحویل میگیرن یه دلیلش بر مبنای قراردادد‌های اجتماعی روسو یه آدمی است که تو بحث قراردادها قراردادها با این تعبیری که بنده به زبان حکمی فلسفی گفتم یعنی چی یعنی اعتباریات رابطه اعتباریات با واقعیات اجازه بدید مثال بزنم شاید برای بعضی دوستان یه کمی پیچیده ساده تر بشه بعد برم سراغ حرف رسوه. ببینید الان مثلا این لیوان آب اینجاست از نظر حکمی این چیه؟ واقعیت. بندم اینجا نشستم. منم یه واقعیت. اعتبار یعنی یک حکم، یه قانون، یه دستورالعمل، یه اعتباری که حالا ما فعلا در حد عقلمون بحث می‌کنیم. عقل من یا عقل شما میخواد واسه کنه، بگه چه؟ بگه آب خوب است، بخورید. یه اعتبار شد بین من و این واقعیت خوب است بخورید یه دستور العمله این میشه اعتبار این اعتبار بر مبنای این دوتا واقعیت مطرح شد حالا سوال، اگر بنده تکوینم یعنی کیفیت وجودیم به گونه ای باشد که خوردن مثال میزنم خوردن آب برای من مذر باشه شما ندونید آب چه دارد و ندونید بدن من چگونه است. حق دارید اظهار نظر کنید؟ نه. چرا؟ چون نه من میشناسید نه اینو. حالا اینو میشناسید منو نمیشناسید. منو میشناسید اینو نمیشناسید. حق اظهار نظر ندارید. زمانی شما حق اظهار نظر بین من و این دارید که هم مرا بشناسید هم این را. بشر امروز مثل آلیکسیس کارل دوبار جایزه نوبل گرفته در انسان شناسی میگه من انسان را نشناختم کتاب نوشته انسان موجوده ناشناخته انسان یک حقیقت از حقایق عالم واقعیاته و چه کسی میتونه لذا ببینید قرآن رسول رو میگم قرآن چی داره میگه جب اونا با قرآن فاصله نگیرید قرآن رو بخونید قرآن رو بفهمید تفاصیر قرآن رو مطالعه کنید به خدا آدم متحیر میشه در عصمت قرآن که میاد تو اون آیه میگه ان الحکم الا لله در عالم تکوین چه کسی غیر از خدا میتونه بر عالم تکوین احاطه و سیطره داشته باشه الا لله تو عالم تشریح چه کسی میتونه باید و نباید معین کنه الا لله چون بر کل کائنات مسلطه رابطه ی همه موجودات عالم کائنات رو هم با هم دیگه میدونه لذا اگر حقوق حیوانم هست باید او معین کنه اگر حقوق نباتم هست باید او معین کنه بله معینم میکنه لذا گفتم شده ما نمیریم دنبالش در بیاریم ببینیم چی گفتن و بعد عمل بکنیم حالا رسول چی میگه جالب اینو فهمیده رسو رسو میگه کتاب های اجتماعی ترجمه فارسی من میگم صفحه 64 برای تقاضا دارم دقت کنید برای وضع قوانینی که به درد ملل بخورد یعنی چی یعنی اعتباریات یعنی تشریعیات یعنی باید و نباید برای وضع قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است اول عقل کل یعنی چی؟ انقدر این عقل قوی باشد کل را بشناسد همینجا تو پرانتز یه چیزی بگم برگردم مسنوی مسخره میکنه جزنگرها را میگه به دریا ماهی دم از خدا زد به کوی حق در چون و چرا زد که چون دریا برایم آفریدی خط خشکی چرا گردش کشیدی مرا هرگز به خشکی نیست حاجت برون از حاجت چرا گشت از خلقت نمیدانست بیچاره که دنیا برای او گردیده محیاب تویی چون ماهی و دنیاست دریا برای تو نشد دنیا محیا آقا ماهی بگه آب که هست دیگه خشکی برای چی خلق شده مگه نظام کلالم فقط تویی آقا این بدن یه بدن الان میخوام ببرم تو اتاق عمل مثلا فرض کنید کلیه رو پیوند بزنن میگه اونی که متخصص قلبه بررسی بکنه اونی که متخصص اعصابه بررسی بکنه، اونی که متخصص جهاز داخلی است بررسی بکنه، ببینه هماهنگی این دستگاه با همدیگه الان به ای هست، من این کلیه رو بردارم، کلیه دیگه بذارم یا همش به هم می‌ریزه. آقا یک کلیه رو تو این بدن میخوان بردارن، باید اونی که همه جهات وجود منو می‌شناسن، اظهار نظر بکنن. آقا در این عالم اونی که بر کل عالم احاطه داره، می‌تونه بگه چی, و وردار چی و بذار. لذا چه با پروین اعتصامی فرمیده میگوید قطره ای در جویی باری میرود از پی انجام کاری میرود همه چیز عالم حساب داره گفت عارفی رو بعد از مرگش خوابش شد دیدن گفتن در چه واضیگو گرفتار یه حرفم گفتن چه حرف گفت یه روز بارانی از خونه در اومدم گفتم عجب بارانه به موقعی به من میگن تو دیگه چرا کدوم کارش بی موقع بود همه چیز حساب داره تشریعیات حساب داره تکوینیات لذا و بالاتر از حکما، وقتی با شهود پیش میرن گوشه‌ای از این نظام عالم را جهان چون چشم و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوس رو در بعضی ها که کم ظرفیتشون کمتره سر به بیابون ها میزنن داد میکشن وای چه خبره چرا یک گوشه از رابطه نظام تکبین و تشریر رو با هم دیگه مثلا تونستن تشخیص بدن لذا قرآن کریم وقتی میفرماید ان الحكم الا لله حکم باید از طرف خدا باشه خب اجازه بدید چون دیگه از فردا شب ممکنه به جهت اینکه وقتا کمه من دیگه به آیات قرآن خیلی استناد نکنم این دو سه آیه دیگر رو هم از سوره قصص یک کمی سری براتون بحث بکنم سوره مبارکه قصص آیه شست و هشت شست و نه، هفتاد و رب و که پروردگار تو که قرار شما رو تربیت کنه بارها اینو من تاکید کردم قرآن وقتی راجب ذات تقدس الهی سخن بیان میکنه الله خالق رازق مالک محیی ممید همه اینا درست ولی اونجاهایی که واژه رب را به کار میبرد یعنی اون خدایی که دستوراتشون برای تربیت شماست اگه خدا گفته نماز بخون خب حالا من نماز نخونم خدا چه زرر میکنه در نظام تشریعی الهی امر و نحی پروردگار برای تربیت منه قرار من تربیت بشم لذا میخوای تربیت بشی ببین مربی چی گفته حالا ببین امیر المونی علیه السلام این رب را و رابطهشو با عبودیت چجوری داره برای ما بیان میکنه مناجات دل شب با خدا داره حرف میزنه چی میگه الهی کفا بی ازن، ان اکون لك عبدا، و کفابی بی فخرن، ان تکون لی ربا، ان تکما اوهب، فجعل نیکما توهب خدایا این عزت منو بس عبد تو شدم، من فرمان بر تو هم من در مقابل هر کسی سرخم نمی کنم همه رو لایق این که بخوان به من امر و کنن نمی شناسم. من تو رو دارم اون کس که تو را و شناخ جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را و چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را من تو رو دارم الهی کفابی بی ازم ان اکون لک عبدا چه ازت از این بالاتر عبد تو باشم یعنی فرمانبر تو هم مولا تویی من از تو دستور میگیرم دارم تو کلاس تربیتی تو ثبت نام کردم منو تعالی ببخشی اما نکته بعدی شیه و کفا بی فخرن این افتخار برام بس و کافی انتکو نلی ربا تو مربی من باشی تو منو تربیت کنی تو قبول کردی که منو تربیت کنید. ببینید شما الان مثلا سراغ قیاس ها واقعا قیاس مالفارق ها. ولی از باب تقریب زهن ارزم کنم. یک عالم ربانی معنوی الهی در سطح عالی شما هی التماس میکنید تو رو خدا برای من یک کلاس بذار. تو رو خدا منو به شاگردی بپذیر. میگه نه. میگه نه. میگه نه. بالاخره رازیش میکنید بعد مثلا با همکلاسی دیگه به دوست دیگر به همسرت به بقیه میگی خدا رو شکر افتخار میکنم فلانی قبول کرد من برم پای درسش امیر میگه افتخار میکنم تو داری منو دربیت میکنی چه افتخار از این بالاتر؟ لذا وقتی مثلا صبح میخواد برای نماز پاشه نه یا دنده و خماضه و با یه با حالتی که حالا دیگه بر از چه رکت دلارستم بشیم او چی فکر میکنه به یه دستور تازه برای اینکه من آدم بشم یه دستور تازه برای اینکه من تکون بخورم یه دستور تازه برای اینکه رابطه من با او تر کنه یه دستور تازه برای اینکه که صلوت تنها ان فحش ها من زمینه زدودن زودن و منکر رو در خودم فراهم کنم یه زمینه دستور العمل دیگر برای اینکه عقبم سالات لذکر مرا بیاد او بیندازد خدایی فکر کنم خدایی ببینم خدایی بیندیشم خدایی عمل کنم اینا همه اینجوری نگاه میکنه خب حالا اینجا چی میگه؟ میگه وربوکه اونی که قرار تو رو تربیت کنه یعنی دستورالعملا رو او به شما بده اول نقطه تکوین رو بیان میکنه یخلق ما مایشا و یختار رو هرچی رو که بخواد خلق کنه او خلق میکنه یعنی تکوین در ید قدرت اوست ارتباط ربوبیت آقایون چجوری معجزه بودن قرآن رو انسان ایمان نیاره چارده قرن قبل تو سرزمین شرک کفر بدپرستی، جهالت بربریت چیزی که معنا نداشت فکر درک یک انسان برخیز درس ناخنده امی، کتابی بیاورد به نام قرآن، پیر از این که تحدی میکند، راست میگید، یه سوره مثلش بیارید، راست میگید، یه غلط برش بگیرید، تو هر وادی انگش میذاری، ای وا! چقدر میشه روی این آیه مباحث بلند و امیغ فلسفی را باز کرد و بحث کرد من بچه تو مکتب امام صادق عليه السلام حاضرم با الهام از مکتب امام صادق همین یه آیهی که براتون میخونم دویست صفحه بحث فلسفی داشته باشم مطالب امیغ حالا اونایی که اساتیدن که حسابشون جداست یه نکتش ببینید ربكه اونی که قرار امر بکنه نهی بکنه تربیتت اون بکنه بگه بیایید میخوام شماها رو رشد بدم من مربی شما باشم اون کیه یخلق و مایشا و یختار و هر چی بخواد بیافرینه او میآفرینه یعنی کائنات در یاد قدرت اوست و یختارو او اختیار میکنه او برمیگزینه او میدونه با چه کار کنه ما کان این اختیار برای نیست همه چی در ید قدرت اوست سبحان الله و تعالی اما یشرکون آیا برای این خدا شریک قرار میده. یعنی آقا فلانی بیاد نظر بده فلانی بیاد کمبودای الهی رو برای من جبران کنه فلانی ها برای او؟ بد و ربکه یعلم ما توکن و صدور هم و ما لنون میدونی رب کیه؟ میدونی اینا در نهادشون چی پنهان کردن ذاتشون چیه و ما یعلنون اگر آشکارم میکنن اینا چیه حالا این کیه و هو الله لا اله الا هو اوست که غیر از او الوهیت مطرح نیست له الحمد فل اولا آخره. ابتدای و ابتدای هستی هم مالعوس سرانجام هستی هم مالعوس اوس ال اول و ال آخر و ظاهر و الباطه و لحول و حک و الیه ترجعون اینجا دو تا غرینه داره که حکم مطلقه یکی لهو که مقدم کرده بر حکمه نفرمده ال حکم لهو فرموده لهو ال حکم این میشه اطلاق دومی ال حکم ال فلام آورده یعنی استثناء پذیر نیست هر چه حکم است فقط و فقط مال اوس و الیه ترجعون قرار شما برگردید برید و اونجا تحمیل بدید چه کار کردید حکمشو پذیرفتید ها چرا گوش نکردید اجازه بدید همینجا برام سراغ نهج البلاغه هنوز سوره قصص هشتاد و در همین زمینه آیه است ولی اجازه بدید یه لحظه خطبه شماره 147 و چهل نهجل بلاغه شماره به جان مولا علی یک کمی دقت بیشتری بکنید ببینید اون از نظر بنده خودم اینجوری هم حالا ممکنه شما نپسندید اگه میپسندید اینجوری که من علام میگم فکر کنید من گاهی مخصوصا نهجل بلاغه رو وقتی که روش کار میکنم خودم رو میذارم جای اونایی که در اون زمان پای خطبه خوندن امیرالمومنین بودن و حضرت اینا رو مخاطب قرار داده با اینا داره حرف میزنه این بیانی که اینجا میشه من حس میکنم حضرت داشتن با یک آه، با یک ناله، با یک درد، با یک دنیا درد دل با خصیسین ببینید چی بیان میکردند. فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله خداوند پیامبر اسلام رو مبعوث کرد به الحق در او راه نداره فرستاده الهی ليخرج عباده من عباده الاوسانه الى عبادته و من طاعت الشیطان الى طاعته خدا پیامبر اسلام رو فرستاد ال این لامو میگن لام غایت لام مقصد برای چی همینه که ما میگیم هدف که چی بشه لیخرج عبادههم من عبادت الاوسانه الی عبادته تا بندگان خدا را از عبد بت شدن بیرون ببرن عبد خدا بکنن متی خدا بشه و من طاعت شیطان الی طاعت بر شیطان نشن شیطان اصلی ابلیس و همه شیاطین دوست ناباب میتونه شیطان بشه خانواده ناجور میتونه شیطان بشه همنشینان ناجور میتونن شیطان بشن جو ناجور میتونه شیطان بشه خیلی چیزا که حالا بحث شیطان در قرآن در فرهنگ دینی آشنا هستید انبیا آمدن چه کار کنن؟ بندگان خدا را بیرون ببرند خارج کنن من طاعت شیطانه الى طاعته نزارن این آموتی طاعت تاعت خدا رو بگیرن عبدالله بشن تا رستگار بشن به قرآن قد بیانه و احکمه با قرآنی که کاملا روشنه که حقه و دستوراتش حکمی که دیشب توضیح دادم حکم چیه و چرا از کلمه حکم گرفته شده پیوندی که بین موضوع و محمول میزنه و اینو گره میزنه این محکم و استوار جای خودشه اینجا مطالبی داره من هضم میکنم تا میرسه به اینجا چند خط بد ولی از دوستان خواهش میکنم این خطبه 147 همه شو بعد مطالعه کنن زیاد نیست و انهو سیعتی علیکم من بعدی زمانان بعد از من یه دورانی برای شماها بیاد لیس سفیح شیعون اخفا من الحق چیزی در اون زمان پنهانتر مخفیتر از حق نباشد ولا از هرم من الباطل چیزی آشکارتر و ظاهرتر از باطل نباشد ولا اکثر من الکذب الله و رسوله در آن زمان دروغ بر خدا و رسولش از همه چیز بیشتره و لیس اند اهل زال از زمان و نیست در نظر مردم آن دوران سلعتون ابوره منال کتاب ازا طولی حق تلاوت اگر قرآن را اون چنان که حقش هست تلاوت کنن معانی دقیق قرآن را برای مردم بیان کنن این زیان من چرین کالا شناخته می شود آقا چرا قرآن می گید فلانی چی گفته حرف رسول هنوز دا می گردم، یادمه فلانی چی گفته فلانی چی گفته میگه زمانی میاد لیس اند اهل زالک زمان عینا این عباراتی که تو زمان ما گفتن من ان شاء آینده با مدرک براتون عباراتشو میخونم که پیش پیشبینی کرده لیس اند اهل زالک زمان سلعه اول من الكتاب اذا تلا حق تلاوته اگه اونجوری که حق تلاوته قرآن ادا بشه میگن سلعی، کالایی زیانبارتر از این نیست اینه چیه ولا انفق منه اذا حر فئا موازی اگر قرآن رو تحریف غلط بکنیم طبق میلشون معنی کنیم اونجوری که زمانه میپسنده توضیح بدیم میگن از این مفیدتری ای چی نیست یعنی با حکم خدا بازی کردن ولا في البلاد شیعون انکر من المعروف ولا اعرف من المنكر هیچ چیزی در سرزمین شما مسلمون ها تر از حق معروف و هیچ معروفی شناخته شده تر از باطل وجود ندارد و عجیب اینجاست فقد نبذل کتاب حملته و تناساح و حفظته اونایی که کتاب رو حمل میکنن یعنی چی رو میذارن یعنی کتاب کتابو قرار بفهمن به بقیه برزد اینا کتابو گذاشتن کنار یعنی چی یعنی اسلام شناسی که به قرآن کار ندارد معرفی کننده دیدی که میگه کتابو بذار کنار ما با قران کاری نداریم گاهی با لفظ میگویند گاهی با عمل نظر ایکس و ایگر بر نظر خدا غلبه دارد چون جامعه ای رس نارذر شود کی مسلمان مسلمونن خدا چی گفته حکم خدا چیه ببینید بیان امین خطبه 147 من نمیگم چی بیان میکنه فقط فقط فاو و وطن اینجوریه نزل کتاب حملته همونایی که حاملان کتابه کلاس اسلام شناسی داره بگم که تو دانشکده های الهیات ما چه مطالبی تدریس می شود به نام الهیات قرآن کجا رفت؟ امیر المؤمنین کجا رفتن؟ نبذل کتاب حملته و تناساه و حفظته حافظین قرآن قرآن رو فراموش کرده قرآن کنار گذاشتد ولی کتابو یوم ازن و اهلهو تریدان منفیان و صاحبان مستهبان فی طریق واحد کتاب و اهلش در چنین زمانی ترد شدن جلسه فلانی نرو او سنتیه او مرچجهه او قدیمیه او هنوز داره از کتابی حرف میزنه که مال 1400 سال قبله خب چی اون جلسه برم بیا امروزی برات حرف بزنم خدا قدیمی بود رفت دیگه آقا من گاهی جواب اینا اینجوری میگم میگم آقا از من کهان پرستر پیدا نمی کنید از خدا کهانه ما نداریم قدیمی ترین قدیم خداست اما میبالیم کیو قبول کردیم اونی که در علم اوله در قدرت اوله در شجاع، در حکمت اوله در عدالت اوله اگه اینجا حالا امیرون ادامش ادامهش میفرمان و صاحبانشون ترد شدن اینا لا یعویه ما, ما اصلا میسی که پناگایی براشون پیدا نمیشه که اونجا پناه بگیرن والكتابه و اهله في زالك زمان فناسه وليسا هم و معهم وليسا اونایی که واقعا انگار اصلا تو مردم نیستن مردم اینا رو نمیشنسن اصلا سراغ اینا نمیرن لعن لا توافق تا میرسه به اینجا جان مطلب اینجاست یه چند خط رد کردم چون وقت اجازه نمیدید اینجا رو دقت کنید هنناس، حالا دستور امیر قرآن کتاب خداست پیغمبر اومده شما را از اطاعت شیطان دور کنه شما را مطیع خدا بکنه شما به اون رستداری برسید اما زمانی میاد قرآن فراموش میشه اونچنانی که باید به قرآن توجه کنن نمی... حالا چی ای یوحناس ان هو من من الله وفق و من تشخذ قوله دلیلا هديه کسی که از خدا نصیحت بخواد موفق میشه و کسی که اتخذر قوله دلیلا سخن خدا رو راهنمای زندگیش قرار بده او هدایت میشه فَإِنَّ جار الله آمنون و عدوهو خائف اونی که با خدا همسایه سایه شده کنایه از اینکه به خدا نزدیک میشه به طرف خدا میره او در امانه و عدوهو خائف اما اونی که با خدا و حکم خدا داره دشمنی میکنه او باید بترسه همه مطلب حالا اینجاست و انهو خوب دقت کنید و انهو لاین بقی سزاوار نیست این سزاوار نیست با قرینهی که الان بحث میشه یعنی چی؟ حالا اینجا اون افراط و تفریط رو براتون بحث میکنم. نه به صورت اخواریون دنیای شیعه نه به صورت های دنیای اهل سنت نه به دنیای به صورت اشاعره اهل سنت نه به صورت قشریون مذهبی های شیعه که عقل خوبیدن نه افراد، نه تفریط اینجا چگونه میگه عقل قبول نمیکنه کنه لاینبقی سزاوار عقل نیست لمن برای کسی که عرف شناخت فهمید چیو فهمید عظمت الله آخ شناخت خدا بزرگتره الله اکبر اینو فهمید ببینید علی چی میگه سلام الله علی لاینبقی سزاوار نیست عقل نمیتونه قبول کنه چیو لمن برای کسی که عرفه عظمت الله ان یتعظم خودشو بزرگ بشموره کسی خدا رو شناخته خودشو بزرگ نمیشموره میگه چی میگه انا فقیر گفت نیمه های شب بود وارد مسجد حرام شدم یک صدای ناله جانسوزی به گوشم رسید نزدیکتر شدم عجب صدایی پرده کعبه را گرفته الهی عبید و بابک حقیر و کعبه فنائک زلیل و کعبه بابک مسکین و کعبه همین رفتم امام سجاد علیه السلامه و مثل من میگه نیمه های شب بود پیغمبر از اتاق بیرون رفت پشت سرش رفتم دیدم سر به سجده نهاده تو مسجد و نووی. الیلا تکرنی نفسی طرفت عین اودا. خدای یه آن منو به حال خودم راها نکن. کسی که خدا را شناخت خودشو چی میدونه؟ انال فقیر انال مسکین انال زلیل انال حقیر انال محتاج انال زعیف انال هرچی به تو دایه عرفه خوندید دیگه معرفته انتال قوی انت،, انت انت انه انه همون جوری که مناجات امیر المؤمنین خوندید مولا یا مولا انتال خالق و, و انال مخلوق و حل یرحم المخلوق الخالق، انتال قوی و, و انال زعیف و حل یرحم و زعیف اینا را کسی فهمید خوب دقت کنید انهو لا ينبغي لمن عرفه عظمه الله ان يتعظم فئن و به درستی که رفعت الذين يعلمون ما او رفعت بزرگی عظمت یک انسانی که عظمت خدا رو فهمیده به این است ان يتواضعوا له برای خدا چی بشه چشم. یعنی هر چه انسان برای خدا بیشتر متوازه باشید من با مجبار دادیم چرا صرف فرق میده درم اه مثلا درمی به من یک دارو میده سبخه همون دارو رو بچه ایست سابه میده میگه اگه این مقرد برمدرسه کسی برو بگنی درمی من روز میدن ولی بسیار قضا بچه یکی رو تو خود رو بیروند و میخورد یکی خود به اون کسی که از خدا معرفت پیدا کرد در مقابل خدا سلامت لذینا اجاره و ما اون چه سلامت چیه؟ این سلامتی یا یا یا ما رو توتبونم هم به که برکشگر میده باز رسیم به الله بلیش کامی باشه هم بیده بیده عاشقا، هر دوها روشتی ها ایشگر شما این چه ما با بایدان دوهای وقت جزیدید. اما شما دیدان چهاری پزشکی استاه دست را یه تو کربلا ولدست ما هم سه اصطادم آمالاً فوق ابن زیاد چه امروز شن از که وقتی اسم او گویی میگذره، این زیاده نشید، این فراری، این حساب کرده که کرده که او کسی و در کنی از اما که و از به کجا هم میسه؟ بگیرم اما با این روز آشراق دیدن او نیست؟ به ایچ یعنی محروم حمدی او او چی شده؟ برنزه ایش شهره ای خدا تا که این مدرک را گلستان ارزش کرد به وقتی در فرمی کرد، اولادش رسدش این کار که میشه. اون چه ماره؟ اون از موردن؟ اون چه ولی این وقت که مقام و ناس ریاست چنده چنده نه فرمی دردند، اون یکی ما از سطح دشمن، دارد، سرده چیز چیزی شما دنیا نه کنه قصد تیرنگازی یا قطعی دارند، ولی کاری با ما کار آشنا، دو پیدن به پیانه شد، باید بعضی در مجال دارم دست پیانه درش رو سرش رو تایی منده، امام حسین خادش رو مومده هم از این که که آقا برگرد خدا استعباد رو گیا مگه یکی قرآن نتاید که رو ده بردار خدا آن خدا اماموزه این از طرف که آنها که چهرول ها ای ای داره این رفت شمیده اماموزه دیدن که آن سر شهر این دست مبارک آوردن زیر چونه ی آنها سر طرف بالا گرفتن دردتن فرگودن این فرق سر تو این رو بزنید که اونهای امتیز بگرد جمع در شما داره به جا ماموزه این امشب رو چی شروع خورمه نشیده حریم رو نشیده قطعه محابطه نکرده وقتی هر اول ما به محاموسه به سیبت محاموسه فردن برای یاد ما. این ما کنه این را شما را به برانشه بزیاد بیعت کنید از این فرقه سکرد مادر این از بجینه اون مادر تو زهراسته کسیده حریم رو نکرده دو نماز جمعات از رو شده امام موسیقی پر بود بابا شده نمو کنم از با منم باسه کار بودم. گفت نه آفاد. پسره بگم. نمو سر شما. قطع نکنید جمعا. هر این رو نگه دادید. تا نگه دارد. امام موسیقی پر بود این فرع اصفر سر تو بارا گفت من بودم که که رو به شما رو گرفتم. صدی محبت کردم. آبا تو بیر من فضی رو این درگه ما درگه درگه درگه نیست یکیست. بله. کسی به ما رو میشه پس اما اول کسی بودم را با شما صد کردم. اجازه بگید اول کسی باشه که در با شما شکید شدم. رفت و جنگی رو به زمین افتاد. آقای ما مسیح سر آمدن. سرشو به در گرفتن. دستوان مبارک از جیبشو در آقا دن. از تو سر زحم سرشو رو بسن. ولی جا من به فدایت دا وقتی از عصف نبیر زمین گنات در رو درموی که سر حسین رو به دامت بگیرم شمشیر داد با شمشیر میزد زند قیز دار بایده می با خرد تر می زند آنها یکی صداق بشند دو کرده با کرد بودن. این جا چیزی یا بایده به یک راه میکردم تا یه